سلام و درود من فرزان پرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید سلام و درود خدمت شما دوستای خوبم امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست خودمونی باشید موضوع رو که این هفته میخوام در مورد صحبت بکنم مربوط میشه به حادثه حج حادثه‌ای که در طی مراسم حج در منا اتفاق افتاد و منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از زائرین شد. بنا بر گزارش BBC فارسی در حادثه حج 131 زائر ایرانی کشته شدند، 365 زائر ایرانی مفقود شدند. از کشورهای دیگه مانند پاکستان 236 زائر کشته شدند. 87 زائر مراکشی، 14 زائر هندی، 16 زائر مصری کشته شدند. این بار اولی نبوده که همچین اتفاقی افتاده و حالا نگاهی می کنیم به دفعات قبلی که اتفاق افتاده و حوادث دیگری هم که در رابطه با حج برای حجاج ایرانی اتفاق افتاده. بشنوید قسمت رو که گزارش بی بی سی هست از اتفاقاتی که در سالهای گذشته در طی مراسم حج افتاده. در سال 2006 بیش از 360 هزار نفر در مراسم جمعیت هنگام اجرای مراسم رمی جمرات کشته شدند. روز پیش از آن هم 73 نفر برای صرف خوراکنی یک هتل در نزدیکی مسجد الحرام جان خود را از دست داده بودند. دو سال قبل از آن در سال 2004 در آخرین روز حج احرام جمعیت 244 کشته و صدها زخمی به جای گذاشت. در سال 2001 باز همه دهام هم جمعیت در روز آخر هرج باعث کشته شدن سی نفر شد. سه سال پیش از اون در سال 1998 بشار جمعیت هنگام عبور از یک بالا هوایی باعث کشته شدن حدود ۸ نفر شد. در سال 1970 جادن زارم در ننا آاتش گرفت که بر سر اون دست کم 340 نفر کشته و سطها نفر دیگر زخمی شدند. اما، خونین تر حادثه در ده هاهای اخی در مکه در سال 1990 اتفاق افتاد وقتی فشار جمعیت هنگام عبور از یک تونه در نزدیکی اماکن مقدس جانبیش از 1400 نفر رو گرفت. خب بعد از این اتفاق واکنش های مختلفی رو از دو طرف داشتیم. هم از مسئولین عربستانی هم از مسئولین ایرانی. آقای ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران، خب اعلام هم که باید شکایت بکنن از عربستان و موضوع رو پیگیری بکنن این بشت همین صحبت های آقای رئیسی رو دادستان کل کشور ما باید با داتستان های کشورهای اسلامی را رایزنی کنیم و یک نگاه مشترکی به لحاظ حقوق بین الملل این قضیه کاملا قابل تعقیب و قابل رسیدگی است و آل سعود نسبت به این قضیه باید پاسخگو باشه و حتماً بدانن که ما محاکمه آل سعود رو به خاطر این جنایتی که نسبت به خودجاج بیت الله الحرام شده از مجامه و از دادگاه های بلنوالی خواهیم خواست انشاءاللان آقای روحانی رئیس جمهور هم نظر خودشون رو در این مورد اینطور اعلام کردن زمنی که تسلیت گفتن به خانواده کسانی که اونجا کشته شدن به این صورت نظرشون رو اعلام کردن حادثه بسیار دردناک زمن اینکه ما از عربستان سعودی میخواییم که همکاری بکنه با ستاد حج با بیسه ولی فقیه در اونجا برای زائرین ایرانی که براشون حادثه پیش آمده من تلفنی با معاون اول جناب آقای جهانگیری صحبت کردم دستور دادم که فوق العاده دولت تشکیل بشه ستاد ویژه دولت در این زمینه تشکیل بشه وزارتخونه های مربوط فعالیت بکنن و الان به وزیر خارج دستور دادم که تماس بگیره با مقامات سعودی و اونها اقدامات لازم رو انجام بدن چون امسال حادثه دومیست که برای حجاج به وجود میاد و بسیار دردناک من تسلیت میگم به همه خانواده هایی که براشون این حادثه بسیار دردناک پیش آمده براشون آرزوی صبر میکنم از اون طرف هم در عربستان مفتی اعظم سعودی شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ حادثه مرگبار حج رو خارج از کنترل انسان ها دانسته و گفته از قضا و قدر اجتناب نپذیرست خب البته این به قول ما ایرانیا بر برمونکرش لعنت اگر شما به خدا و خدا پرست باشید خب قطعا فکر میکنه به قضا و قدر رو اعتقاد داشته باشید و این اعتقاد داشته باشید که هر چیزی که اتفاق میفته کار خداوند هست و از دست انسان کاری ساخته نیست البته نمیتونیم بگیم هر چیزی خب به هر صورت حالا من اطلاع دقیق از این که این حادثه چرا افتاده کی مسئول بوده کی مسئول نبوده از اون طرف عربستانی ها هم ایرانی ها رو محکوم میکنن میگن ظاهرا ایرانی اونجا یک باعث ازدهام شدن و این حادثه رو آفریدن خیلی جالب بود من یه توییتی در این مورد کرده بودم داخل در توییتر خودم یه نفر منو تک کرده بود داخل یه توییت دیگه که اون میرفت یه ویدیویی در یوتیوب که اون ویدیو مربوط بود به خلاف ها و کارهای خلاف که زاهران ایرانی در حج انجام داده. مفتی سعودی در دیدار با محمد بن نایف عبدالعزیز ولی و وزیر کشور عربستان گفت که او مسئول آنچه رخ داده نیست چون حج در توان داشته انجام داده است دولت عربستان اعلام کرده که تاکنون 769 نفر در این حادثه کشته و صدها نفر هم زخمی یا مفخود و الاسر شده است. بعد از این همه انتقادها و اینکه ایران تهدید کرد اونجوری که شورای عالی گفته بودن که باید شکایت بکنن از اون طرف عربستان گفته خب این به ما ربطی نداره کار خدا هست و حالا برید و از خدا شکایت بکنید بعد از این همه تهدید کردن و برای همدیگه شاخوشونه کشیدن در آخر کار ایران و عربستان به تهدید نظامی هم کشید در هفته گذشته و همونطور که سایت بی بی سی گزارش داده آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در جمع گروهی نظامی به دولت عربستان سعودی هشدار داد که اگر به حجاج ایرانی احترامی کند یا به وظایف خود در قبال اجساد زاران کشته شده ایرانی در واقع منا عمل نکند ایران عکس العمل خشن و سخت نشان خواهد داد او تلویحا حمایت عربستان از صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق در دوران جنگ با ایران یادآوری کرده و گفته که همه حامیان او سیلی خوردهند و باید ایران را شناخته باشند اما مسئله ای که باعث میشه یه مقدار بپرسیم خب چرا ایران انقدر داره این مسئله رو جدی گرفته و چرا تهدید به شکایت از آل سعود میکنه تهدید به حمله نظامی میکنه شاید شاید جواب این سوال رو بتونیم در حرفای آقای ولایتی پیدا بکنیم علی اکبر ولایتی مشاور بینامره رهبر جمهوری اسلامی حادثه رمی جمرات را زنبرانگیز خواند و از مفقود و کشته شدن برخی افراد رده جمهوری اسلامی در این حادثه خبر داد. در همین حال مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران ادعاها درباره دخالت موساد سازمان امنیت و اطلاعات اسرائیل در این حادثه را فرافکنی و عملیات روانی ایادی تذویر خواند. خب همونطور که میبینید این دعوا سر این مسئله بین دعوای لفظی بین ایران و عربستان بالا گرفته و هر کسی اون دولت رو متهم میکنه که عربستان میگه تقصیر حجاج ایرانی بود ایرانی هم میگن خب عربستان بر برهاد مسئول هست سالانه این همه حجاج میان اونجا و اینها مسئول جون این افراد هستن اما یکی دیگه از مسئولی که پیش اومد قبل از این مسئله پیش اومد و خیلی هم سرصدا کرد مسئله اون تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه عربستان که این مسئله هم خیلی با احساسات ما ایرانی ها بازی کرد و خیلی واکنش رو در شبکه های اجتماعی در پیداش خیلی طرح تره لغو حج و عمره رو دادن خیلی ها تنصیم چرا ایرانی ها میرن اونجا و, و, و بخوام خیلی صادقانه بینگریم این صحبت این که چرا ایرانی ها میرن حج، چرا این کارها رو میکنن، چرا پول تو جیب دولت عربستان میریزن، وقتی پیش میاد که یه اتفاق ناگواری پیش بیاد، حالا یا ایده مثل حادثه منا، منا بشه و یه عده بمیرن، یا اینکه مثل این بشه و مثلا بحث تجاوز باشه و اینها که خون ما به جوش بیاد و بیام از خودمون بپرسیم که چرا ما میریم و پولامونو اونجا داریم خرج میکنیم؟ چرا به خودمون نمیرسیم؟ این همه محتاج تو مملکت خودمون هست. سعید اوحدی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه ایرنا در تشریح پیگیری ماجره قصد تعرض دو مأمور سعودی به دو نوجوان عمره‌گزار ایرانی اون ماجره رو به این صورت شرح میده. بر حال روز هشتم فروردین ماه پروازی که ازین ایران بود از فرودگاه جده در آخرین بخش بازرسی دو مامور پلیس بازرسی عربستان در واقع با بهانه تفتیش قصد شومی رو داشتن نسبت به دو نوجوان عزیز زائر ایرانی که خوشبختانه با هوشیاری این دو نوجوان و با هوشیاری و به موقع عمل کردن خانواده محترمشون برحال بلافاصله اونجا موضوع مچه میشه در فضای مجموعه کاروان وزارین عزیز امتنان میکنن که سوار پرواز بشن بلا با کنسولگری جمهورستان میران در جده تماس گرفته میشه سرکنسول محترمون در پروزه جده حاضر میشن نمندگان بیسه مقام مردم رحبری حاضر میشن نمندگان سادوان حج زیرت حاضر میشن و فشار جدی اون شب در وقت شب بود پرواز وارد کردن تا مقامات سعودی مجبور بشن بیان داخل پوزگاه و خوب باشن این دو فرد پولیس فاسد و خاطی شناسایی شدن همون شب دستگیر میشن و با پیگیری مجموعه یعزانشون دو بودن همون شب هم روانه زندان شدن خب بر حال این برخود خاطی بود که در واقع زائر ایرانی از کوچکترین موضوعی مشابه این موضوعات کدش نخواهد کرد و لازم انجام میشه. خب همونطوری که اشاره کردم هر وقت یک واقعی اینجوری پیش میاد در عربستان این بحثی که ما چرا اونجا چرا ایرانی ها میرن اونجا و پولشون رو حروم میکنن یا پولشون رو میریزن جیب دولت عربستان و در حالی که این همه مختاش تو ایران هست پیش میاد بعدم هم براخره میریم سراغ اشعار شاعران بزرگمونو پیدا میکنیم که بله کعب و بودخانه بحانست و اول به همسایت برس اول نمیدونم به فقیر فقراء مملکت خودت برس اون حجد میشه همون اونو حکایات مختلفی براخره از ابید زاکانی و از سعدی و حافظ و این اونور پیدا می‌کنیم که خودمون رو راضی بکنیم ولی هیچ وقت این راضی کردنه هم اتفاق نمی‌افتاد باز هم مردم میرن و باز هم اتفاق میفته حالا جای شکرش باقیه که مردم مثل این که کوتاه کتاه اومدن از عراق رفتن و وسط این همه بمب و داعش و فلان و بیسار دائشگار ها یه طرفشه از اون طرف آمریکا بم میرزه از این طرف روسیه جدیدن شروع کرده عملیات پیدا کردن خود ایران هم که اونجا فعاله حالا بالاخره باز خوبه جای شکرش باقیه که حجاج ایرانی عزیز واقعا کوتاه اومدن از عراق رفتن و کربلا و این چیزا و گانا یعنی هر هفته فکر کنم یه اد رو ما بعد می‌خونیم تو روزنامه که بله اینها مثلا بمب زدن یا موشک خوردن یا نمی‌دونم گروگان گرفته شدن جای شوکش براخره باقی هست خب بعد به حادثه حج و اتفاقی که اونجا افتاد حالا اینکه چه کار میتونیم بکنیم که این اتفاقا نیفته چه کار میتونیم بکنیم که به جایی که حالا بریم اونجا و اصلا اصلا باید برن یا نه خب من خودم که مسلمان نیستم ولی به عنوان کسی که دیندار هستم بله زیارت و از اماکن مقدسه رو یه چیزی میدونم که ما نمیتونیم بگیم نه اصلا نریم و اصلا کلا نباید رفت خب طرف مسلمان اعتقاد داره اونجا عربش هست مکان مقدسش هست خب این حق رو داره که بره بالاخره ولی چیزی که هست می مسئله ای که در من در فیسبوک خوندم که آقای مهدی خلجی یک پست رو گذاشته بودن که این پست خیلی قابل تفکر بود من همون پست رو اینجا میخونم از فیسبوک آقای مهدی خلجی است بعد از اون حادثه نوشته بودن که به نظرم خیلی جالب اومد و حیف اومد که این رو اینجا نخونم اجازه بدید من این رو برای شما بخونم تا بعد بیشتر صحبت کنیم جدا از فاجعه انسانی منا و مسئولیت سنگین دولت عربستان سعودی خوب است ما ایرانیان درباره فاجعه اقتصادی اخلاقی مهم و مکرری به نام اقتصاد حج بیاندیشیم که مسئولیت آن نه تنها بر دولت جمهوری اسلامی که همچنین جامعه مؤمنان و نهادهای مذهبی از جمله روحانیت است در فقه موجود هر مکلفی که توانایی مالی دارد باید یک بار حج تمتع به جا آورد ولی به ویژه پس از جمهوری اسلامی سفر حج یا عمره بسی بیش از گذشته به رفتاری برای تفاخور یا کسب منظرت اجتماعی بدل شده است. به درستی نمی توان گفت از میان سطح هزار ایرانی که هر سال به مکه می روند چه درصدی حج واجب می گذارند یا بار اولی است که عمره به جامعه آورند. اکنون سفر به مکه و مدینه برای جامعه مومنان مثل جهیزیه نوعروسان در جامعه سنتی پدر سالار مایه چشم و همچشمی و رقابت اجتماعی است و فاقد مایه و محتوای معنوی از سوی دیگر اقتصاد حج نه فقط دولتی است که سیستمی مافیایی غیر شفاف و غیر مسئولانه دارد و هم یکی از جلوه های اقتصاد ناسالم ایران است و هم یکی از سرچشمه های آن اقتصاد حج تبوست و سخن گفتن و کاوش کردن از آن آزاد و بیتاوان نیست اقتصاد حج جنبه از اقتصاد دین در ایران امروز نیز هست که نشان میدهد چگونه امر قدسی در جامعه به ظاهر مذهبی میتواند از درون پوک و پوت شود و از قضا مادیگرایی و پول پرستی تمکارانه و شهوت مشمعز کننده ای را رواج دهد. متنی بود از آقای مهدی خلجی؟ که در فیسبوک خودشون منتشر کرده بودن و واقعا جای فکر داره به جای اینکه بگیم که کلا نریم یا اینکه نه باید بریم جواب بله و نه نداره به این پرسش که چه کار باید بکنیم بهتره فکر بکنیم و اون اختص... چیزی که ایشون اشاره اقتصاد حج بله اگر اقتصاد حج درست باشه اگر از دزدی مسئولین مملکتی تو ایران کم بشه و فرستادن مردم به حج یک دکونی برای یک اد نباشه خب اونایی که توانایی مالیشو دارن میتونن برن حجشون رو و زیارتشون رو انجام بدن. بقیه هم میتونن از این پول ها در جهت کمک به همسایه های خودشون، فقیرها ها و نیازمند ها کمک کنن. مسئله دیگه که خیلی باید اینجا بهش بشتص... اشاره بکنیم و توجه بکنیم. واقعا مملکت ما انقدر منابع طبیعی و نفت و گاز و انقدر منابع طبیعی داره که فکر نمی کنم فقط ما محتاج پول اون عدهی باشیم که دارن میرن حج برای کمک به دیگران متاسفانه این مسئله اقتصاد ناسالم و دوزدی ها فقط مربوط به اقتصاد حج نیست در همه ش... شعونات اقتصادی جمهوری اسلامی ما میتونیم این رو شاهد باشیم اما موضوعی هم که ایشون گفتن دقیقا درست است و خیلی ها فقط حج رو برای این میرن که حاجی بشن و از این هاجی شدن فردا بتونن یک استفاده ای بکنن در فلان اداره یا در با فلان مسئول مملکتی بتونن ارتباط بگیرن و کارشون رو جلو ببرن که اکثر مواقع وقتی میگیم کارشون رو جلو ببرن یک قرارداد خیلی خوب امضا بکنن و چند برابر اون چیزی که هزینه کردن برای حجشون در واقع بهشون برگشت داده بشه ولی واقعا موضوعی هست که میشه جای داره خیلی درموردش صحبت کرد البته کلا موضوع اقتصاد در ایران، حال اقتصاد دولتی در ایران و موضوع رانتخاری یعنی یک چیزی هست که جای صحبت زیاد داره و فقط هم محدود به اقتصاد حج نمیشه. اقتصاد ناسالمی داریم این هست که همه میدونن ولی اینکه چه کار باید بکنیم و چرا ناسالم هست خیلی بحث پیچیده و به مقدار تخصصی‌تره. برنامه این هفته ای ما قول لده بودم که زمانش کمتر بشه و فکر مکنم به قولم هم, هم عمل کردم امیدوارم که خوب و خوش باشید تا هفته ای آینده و برنامه دیگه و موضوع دیگه خدایارو نگهدارتون